دستم به حشمت و جاخ و جلال شاخ شجا که نیست با کسم از بحر مال و جا نزا شراب خانگیم بس می مغانه بیار حریف باده رسید ای رفیق تو به ودا خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید که من نمی بوی خیر از این اوزا ببین که رخص کنان میرود به ناله چنگ کسی که رخص نفرمودی استماع سما به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت که من غلام مطی ام تو بادشاف مطا به فیض جرعه جام تو تشنیم ولی نمی کنیم دلیری نمی دهیم صدا جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بار که به کبریاشاب شجاع